و علی آله الطاهرين تاهرین المعصومین سيما ما بقیت الله في الارزین اللهم انت السلام و من ولك سلام و, و يعود سلام و که السلام سبحان رب رب العزت اما یسفون و على علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایوه النبی و رحمت الله و برکت السلام علی الامت الهادین المهدیین السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی, علی امیر المؤمنین السلام على صدیغة الشهیده السلام على الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علی بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علی باغر علم النبي، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر القاظم السلام على علي بن موسى رضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري، السلام على الهجت ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا مولاي يا اول مظلوم غصب حقه یا امیر المؤمنين یا علی ابن أبي طالب یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولانا اننا توجهنا و وتوسلنا و توسلنا الله الله و قدمنا که بین ید حاجاتنا یا الله اندالله اشفلنا الله قال الله تعالى في كتابه ونفسه وما سواها فعل همها فجورها وتقواها قد اصلح من زكاها وقد خاب من دساخ خلاصه و فشرده بحث ما در چند شب گذشته این بود که ما نیازمند به تزکیه نفسیم از نظر قران کریم از نظر روایات ائمه الهی خدا علیه السلام از نظر عقل و استدلال و تحلیل انسان شناسی که بشر می تواند به خاطر نفسی که خدا به او داده است و این نفس یک سرمایه گرانقدر است که موجودات دیگر این سرمایه را ندارن و همین جهت می توانند به یک درجاتی برسم که این درجات برای موجودات دیگر نیست در سوره انشقاق آیه شش قطعاً با این آیه شاید اکثر شما آشنا هستی از جمله آیاتی است که تکامل و تعالی انسان را تا به کجا میتواند باشد این آیه مشخص میکنه و روایتی از امام صادق علیه السلام از اصول کافی بعد از این آیه انشاءالله خواهم خون که با توجه به این آیه و اون حدیث ما در مرحله اول این توجه رو پیدا کنیم که کجا میتونیم باشیم و کجا هستیم که یکی از اسرار شبهای قدر همین است که ببینیم قدر خود را بیاویم ما کجا می توانیم باشیم و کجا هستیم آیا بین اونچه که هستیم تا اونچه که می باید بشویم چقدر فاصل است و این فاصله را باید برداریم یا نه و اگر باید برداریم چگونه این فاصله رو برداریم سوره انشقاق آیه شش یا ایوهال انسان انک کادحون الاربکه کدحن فملاقیح یا ایوهال انسان بارها این نکتر رو از نظر بحث قرآنی توجه کرده ایم انسان جمع است الافلامی که بر سرش در اومده افادش جمع الجمعی می کند یعنی استثنا نداره انسان های سفید سیاه ها نه سیاه ها سفید ها نه علما درس نخونده ها نه درس نخونده ها علما نه نه هیچ اینجا همان که قرآن میفرماید ان اکرمکم اندالله اتقاکم با تقواترین میتواند زن باشد میتواند مرد میتواند سیاه باشد میتواند سفید میتواند با سواد باشد میتواند بی سواد ما ممکنه کسانی شرایط زندگیشون ایجاب نکرده بران درس بخونن در یک زمینه ای ملا بشن او فردای قیامت بگه خدایا اون دیگری که همسایه من بود همسن سال من بود فامیل من بود شرایطی داشت معلم پیدا کرد کلاس برایش شد درسی خوند هم مباحثه خوبی پیدا کرد او از نظر علمی رسید به قله های رفیع دانش اما من این امکانات رو نداشتم درسته که قران میفرماید هل یستو الذین و والذین لا علمون، اما نفرموده ان اکرمکم عند الله اعلمکم علم شما که با تقوا بالاترین نیست بالاترین با تقوا ترین است تقوا به گونه‌ای که یک بی سواد محض هم میتواند با تقوا باشد که بحث تزکیه نفس در این رابطه است یعنی هر کس در هر سنی در هر شرایکی، در هر پست و مقامی که قرار گرفته است بخواهد خودش رو در راستای تکامل الهی به کمال بکشانه یا ای اهل انسان سخن در خصوص نفس انسانه هر انسانی بخواد باشه پس این عامه انکادحون <تصفح> الی ربک انک نکه به درستی که تو هماناتو به تحقیق که تو یک حالا انک اومده تأکید داره میکنه معکدن این نکته رو توجه میده که شما یه انسان کادحون الاربک حلاش شکرید حرکت کننده ای پیش رونده اید الاربک به سوی توی کد کدحن چه حرکتی هم چه تلاشی هم چه پیشرفتنی هم ملاقات پس خدا را ملاقات میکنید یعنی چی؟ خوب قطع فرمه اجازه بدید همین یه آیه دیگه هم بخونم که یک کم این آیه رو روشن کنه بعد بریم سراغ حدیث اگر قرآن می فرماید فمن کانیرجو لقا عرب به فلیع عمل عملا صالحا یرجو لقاء رب رجا یعنی امید یرجو امید میدارند لقاء ربشون را خوب اگر لقای رب ملاقات پروردگار ممکن نبود چرا قرآن می‌فرماید انکاک هادون الی ربکدهم فملاقی اونجا میگه یرجو لقاء رب امیده به ملاقات پردگاردارن. البته ملاقات در عالم ماده مثل همین که ما دست به همدیگه میدیم. گاهی همدیگر رو در آغوش گیریم و میبوسیم این میگه فلانی رو ملاقات کردم به ملاقات فلانی رفتم یعنی از فاصله بین ما و او از میان رفت ما به هم نزدیک شدیم. یک نزدیکی دست در دست هم گذاشتن یعنی انقدر نزدیک هم شدیم که دستامون به همدیگه چسبید و گاهی ملاقات رو میخوایم به اوج تمیمیت بکشونیم همدیگر رو در آغوش میگیریم همین استحبابیم هم که در اسلام هست همدیگر رو ببوسید و اظهار علاقه و محبت کنید خب اینو میگن ملاقات خب ای بشر تو حرکت میکنی به سوی خدا اون حرکتی که او رو ملاقات میکنی. یعنی من به خدا دست بدم خدا رو در آغوش بگیرم ببوسم مگه خدا جسمه مگه خدا دست و صورت داره مگر خدا این جنبه های جسدی و بدنی و مادی و مکانی و زمانی که ما برای خودمون قائلیم برای خدا میشه نعوذ بالله قائل شد نه نعوذ بالله چیه مسئله؟ این خدا را ملاقات کردن ملاقات یعنی نزدیک شدن نزدیکی به اقتضای هر موجودی معنا پیدا میکنه نزدیکی به یک موجود مکانمند میتونه نزدیکی مکانی باشه. مثل که ما به شما مکانن به ایشون نزدیکترم تا به آقای کنجا نشسته این نزدیکی مکانیه نزدیکی زمانی هم همچنین به موجودات زمانمند من و شما الان چارده قرن با پیغمبر اسلام از نظر زمان فاصله داریم کسانی در این زمان هم که از نظر واقعی به پیغمبر از کسانی که در زمان پیغمبر بودن چی نزدیک داره. این نزدیکی زمانی نیست نزدیکی مکانی نیست نزدیکی صفاتی رفتاری چرداری منشی و تبعیتی است یعنی شما زمانی به پیغمبر اسلام نزدیکید که تابع پیغمبر باشید هر چه پیغمبر گفته بگید چشم هر حرکتی که بیشتر تابع پیغمبر بود بیشتر به پیغمبر نزدیکه و هر کسی که بیشتر از پیغمبر از نظر تبعیت جدا شد میگیم فاصله گرفت این دورتر شد حالا ولو همسر پیغمبر باشه همسر پیغمبره اما از پیغمبر دوره از خانواده پیغمبره قرآن میگه انهو لیسا من احلک از اهل تو نیست اهل شما یعنی کسانی که در محدوده خانواده شما جا دارن میگه این در محدوده خانواده شما جا نداره یعنی اینقدر دوره تو خونه است، سر یه صفر نشستین. زیر یک سخت داریم زندگی می کنیم ولی از هم دوریم چون فکر ما آرمان ما هدف زندگی ما با هم خیلی فاصله داره نزدیکی به خدا یعنی متی شدن خدا اطاعت از خدا سرمان خدا را قبول کردن گاهی ما به اندازه ای قبول می کنیم هنوز خیلی منده بگیم ما به خدا نزدیک شدیم یک وقت اونقدر مطیع خداییم میگه انگار ما دیگه چسبیدیم به خدا کسی که از همه بیشتر به خدا رسیده نزدیک شده پیغمبر اسلام و ائمه اتحاره لذا ما میگیم علی را خدا نمیدانیم ولی از خدا جدا نمیدانیم چرا؟ چون این علی یک آن در طول عمرش یک آن نه این که ما شیعیم این رو میگیم افتخار میکنیم که شیعیم به خدا آغازم <تصفح> شما آشنایید با سبک کار من تا هر عقیده ای از اقاعدم رو استدلال نکنم آیه مربوطه نیارم لاعقل ده تا حدیث از منابع دست اول اهل سنت نیارم ازش رد نمیشم لذا فکر نکنید دارم با احساساتی هرکو میزنم نه ما هر چه شاکر باشیم که شیعه شده این بازم کمه که ما دنبال علی میریم انشاءالله دنبال روی علی شیعه علی باشیم یا علی انت و شیعت و تا خیرول بریه اون بحثای مستدل منتقی در جای خودش بمونه فلانی نو بخواهم کنم علی یک آن کسی در تاریخ نمیتونه قضاوت کنه جز اون که خدا خواسته عمل کرده باشه خب ایامم ایام تأثر هست است دیگه باور کنید خدا میدونه من به زحمت خودم رو کنترل میکنم این ایام حرف بزنم چقدر وقتی یادش میاد فکر میکنه یه لحظه متوجه میشه آخه شما خود علی میگه کونول ظالمه خصما وللمظلومه اعونا خصم ظالم باش ولی برای مظلوم یاور باش کمک کننده باش خودم مظلوم از علی مظلوم‌تر شما سراق دارید احساسات تاریخ بخونید دیگه تاریخ شیعه هم نخونید تاریخ سنی رو بخون تو تاریخ سنی ببینید چیکار کردن با این مرد غذا انسان به زحمت داره خودش رو کنترل می‌کنه بخواد حرف بزنه اما اگر من حالا این ایام این حرفای من بعضی یا شما رو متأثرام میکنه اب نداره میدونم دلآ کن شکسته است آخه علی که یک آن جز برای خدا این نزدیکی به خدا یعنی این یعنی خدا چی میخواد من همونو میخوام ولو نفسم خب وقتی میان در خانه امیر المؤمنین ریح السلام پهلوی زهرا رو میشه کنن. علی خم به عبرونه نمیاره. شما رو به خدای کمی فکر کنید رو شوخیه علی چه کسیه خلخال از پای یک زنه یهودیه که در منطقه حکومتی علی به سر می‌ورد به زور کندن در دوران حکومت علی این نهج وللاقات وقتی خبر به علی رسید آقا تو اون منطقه حجوم آوردن یه زنی رو به شتم کردن در این حد خلخال مثل الانگو که ما به خانومای ما رو میندازن عربا رسم خانما شبیهش به مچ ماشون پاشون هم می‌بندن این از پاش به زور کندن علی گریش کرد رب بالا منبر مسجد کوفه خطبه خون و این خطبه الان موجوده و مضمونی در این خطبه داره که اگر از این مصیبت بمیرید جا دارد چرا؟ چون چرا به یه زنی که پناهنده ما بود ستم شده این تحت پناه ما بود تحت حکومت ما بود ای وای این علی که به یک زن ولو یهودی است بهش ظلم میشه. میگه بالاخره در حریم حکومت ما بود همه بمیرن جا داره که به یک زن ستم شده وقت زهرا که تو خونه علی بود اونم زهرا بود که جان علی بود حیات علی بود عمر علی بود امید علی بود پشتوانه علی بود تا اون حد که امار یاسر میگه در کوفه دوران حکومت ظاهری علی یه <تصفح> روز به علی گفتیم آقا جون محاسن شما سفید شده خضاب نمی کنی حضرت پرمودنی که بعد از شهادت زهرا من دیگه میتونم تونم محاسنم رو خضاب کنم یعنی چند سال گذشته نزدیک حالا سال اول بگیریم 26 سال سال اول حکومت علی تو کوفه بگیریم سال دوم بگیریم 27 سال سه سرف... بالاخره تا 30 سال بین 26 تا 30 سال از شهادت زهرا گذشته علی سرانه یا آدم احساساتی معمولی میگه من هنوز عزادار زهرا من نمیتونم احساسم رو خذاب کنم و آیا اینکه که هجوم آوردن این برای علی درد بود یا نبود باز هم یعما یاسر میگه ما تو مسجد نشسته بودیم یکی میگفت بزرگترین مشکل برای مرد بدعکاریه یکی میگفت چیه یکی میگفت چیه دیدیم علی از در اومد گفتیم از علی بپرسیم بزرگترین مشکل چیه تا به علی گفتیم سرش انداخت پایین شروع کرد به گریه کردن دیدیم اشک‌ها آقا چی شد؟ فرمود بزرگترین مشکل برای یه مرد اینه که جلو چشمش همسرش رو بزنن. شما دیدید هنوز الان الحمدلله این غیرت ها تو جوونای ما هست. جوونا زندهش کنید. جوونا قوی‌ترش بکنید. جوونا جوون مرد بشید. اینا رو رعایت کنید. دیدید دو تا با هم تو خیابون جایی تصادف میکنه من دقت کردم. هنوز یعنی خیلی طرف عصبانی از ماشین پیاده میشه که بیاد با راننده دعوا کنه. می‌بینید زن و تو ماشینن. میگه پیش زن و بچهش خجالتش ندید اذیت نکنید میگه اگه حالا مثلا یه آدم البته گذشت اخلاقی خوبا همیشه آدم گذشت کنه ولی اگر یه آدام عصبی و لجوازم هست تا میاد دعوا کنه میگه آخه زنش تو ماشینش چاسته بود حتی میخواد گاهی قلدری خودشم به رخ بکشه به راننده میگه خانومت بوده وگرنه شونت میدادم چی اما اینا این ملاحظه را برای علی نکردن چقدر علی مظلومه خب علی که زهرا جانشه عمرشه، حیاتشه و وقتی بدن زهرا رو دفت میکنه میاد کنار قبر زهرا میشینه علی میگه زهرا جان قصه من اینه که بعد از تو میخوام زنده باشم علی میگه قصه من اینه که میخوام زنده باشم اما این علی چون خدا نمیخواد حرف بزنه حرف نمیشه الله اکبر ببینید؟ خب این با خداست دیگه از خدا جدا نیست یا ایوها انسان انکک هاد حن الی ربکد هن سمولاغیست تو میخوایی به سوی خدا حرکت کنی تا اونجا که خدا رو ملاقات کنی یعنی برسی نزدیک خدا بشی آیا این نزدیکی به معنی تبعیت غیر مگه معنی داره اون چنان بشی که حدیث میخونم از امام صادق براتون اون چنان بشی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 میگه من نیستم تا بخوام او چی میخواد لذا علی که زهرا تمام وجودشو گرفته الان این زهرا پشت در میگه یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن عبیق و علی اینو میشنوه اما خدا الان میخواد که علی صبر کنه خم به ابرو نمیاره بسی به خدا رسیده ما یا ایوهل انسان پس فقط علی نباد به این مقام برسه ما به عنوان شیعه علی تا انجایی که میتونیم به علی نمیرسیم و نعوذه به الله خود حضرت فرمود لا یه غاست و احد نه نه با ما مقایش نکنید اما سلمان ابوذر، مقداد، امار اینا اینایی که رفتن بالا ما حرکت کنیم به اونجاهایی که میتونیم برسیم به خدا نزدیک بشیم این نزدیکی چگونه میشه که تزکیه نفس نفست تو رشد بده خب یه درخت را تو ر میاد مثلا پنج متر قدش رفته بالا این تنه رفته بالا من میگم که رشد کرد دیگه یه مهندس کشابرزی که میدونه میگه نه ای درخت معمولا تا ده مترم راه داره اطرافشو آماده بکن با بذاره بالا یه درخت دیگه است میگه آقا تا بیس مترم راه داره آقا تا چل مترم راه داره درخت نفس ما تا کجا راه داره الاربک لذا در جایی دیگه میگه یا ایا تا هم نفس مطمئن نه ارجعی الارف بک بیایید بالا این بیایید بی بالا اون وقت کار انسان وقتی به اونجا رسید همین الان که نشسته بودم یکی از عزیزان در گوشم قضیه ای رو از قول یکی از دوستان ما کرد که فلانی گفته من قبل از اینکه که اصلا مشخص بشه آزم کربلام یا نه یک تیر مرد پشتش گوزدر اومده ظاهرشم خادم یه مدرسه بوده حالا نه آیت الله نه حجت الاسلام نه جناب استاد نه یه آدم خادم یه مسجد خادم یه مدرسه گویا نگاهی به صورت من کرد گفت تو در آینده نزدیکی میری کربلا گفت چهار ساعت بعد به من زنگ زدن آماده بشور کربلا خب این بشر دیگه وقتی میره بالا از بالا نگاه میکنه ببینید حالا این تعبیر مادی من میکنم تعبیر معنوی خیلی بالاتر از یه عرفاست بنده الان توی حسینیه نشستم این فضا رو میبینم دیگه چقدر از فضای تهران رو من میبینم این فضا رو حالا اگه هواپیما سوار شدن بالای تهران موندم چقدر رو میبینم به اندازه ای که از اون بالا دارم نگاه میکنم کسی که ربک داره حرکت میکنه چه پله بالا رفته از اون پله داره نگاه میکنه علی که رفته اونجا لذا میگه شمعی واگوز اون چه دیده ای اون بانایی داری میبینید چیزشو به ما بگو حالا حدیث برای بخونم اصول کافی جلد دوم صفحه سی سد و, و دو حدیث شماره هفت قال رسول الله قال الله عزوجل حدیث قدسیه پیغمبر فرمود که خدا گفته ما تقررب اLEYّ عبدون به پیغمبر داره خبر میده از طرف خدا به من این شماری قدسی یعنی خدا گفت ما تقررب اLEYّ عبدون به چیزی نزدیک نمیکنه. بنده ای رو به من خب اون چی بشیئن. به شیئن به وسیله چیزی احب با علیه ممت پرستو علیه و انهو لیتغرب علیه به نافله ارزش نافله رو میخواد بگه که این نافله یه علاقه توضیحی داره این عرض میکنم به اندازهی که حالا فرصت اجازه میده پیغمبر اومده خودش معراج رفت معراج یعنی چی؟ ضعف بالا به مقام قربی پیغمبر رسید که دنافت ادالله فکانقاب قوسین او ادنا دنوبن بخترابا شد دیگه یعنی همه به خدا نزدیکتر شد علی هم با او همراس و دیگران حالا این پیغمبر میگه خدا به من گفت عبد من بنده من با چیزی به من نزدیک نمیشه به اندازه نافله یعنی نماز باعث قرب نیست شما میگید نماز میکنم قربتن الالله روزه میگیرم قربتن الالله این یک کنایه داره بعد ادامه ی حدیث کنایه از اینه نافله واجبه یا مستحبه مستحبه بهتری نافله از نافله شبان روز کدومشه یازده رکت شب یعنی اگر کسی این مقدار عبد شد که شب از خوابش بزنه نیمه های شب بیدارشه نزدیک به و صبح اونجا نماز بخانه سر رو به سجده بگذاره الهی الهف بگه بعد تو قنوت نماز وترش با خدا درد دل کنه بعضی وقتا جوونا ها میپرسن ما هفتش می‌زنیم آنها آملا نقل قول میکنیم از اونا میگن چه دعایی رو در قنوت بخانیم کسانی رو بنده میشناختم که جوشن کبیر را تو قنوت نماز وترشون میخوندن حالا شما انقدر ممکنه با دانشگاه و درس و بحث و کار نتونید سنگین نکنید نه حتی اگر نمیتوانی تو پرانتز بگم بعد برگردم نمیتونید یاد درکت رکت بخونید درک از شف و یه رکت وید رو بخونید نمیتونید ایستاده خوابالو نشسته بخونید بذارید ترک نشه شیطون میخواد گولمون بزنه جلو شیطون واسفید نمیتونیدم تو قنوطتون دلتون میخواد حال کنید با خدای خودتون عربی متوجه نمیشید فارسی با خدا عرض بزن تو اونوت نماز بیا با خدا سخن بگو تو قنوت نمازفه آقا نیمه شب که دیگه تظاهر که نمیشه لذا من در زندگیم دوستانی دیدم که بنده میدونم مقید به نماز شبن ولی تو مسافرت با جمعاً نماز شب نمیخونن فردا یهوشه که غذا میکن تو نماز شب برای این گفتن که انسان مخفیانه بین خود و خدای خودش یک ذره شکل ریا نداره شکل تظویر نداره فقط و فقط بین خود و خدای خودشه و اون وقت شب گردنشو رو کج میکنه الهی الاه خدا یا میخوام بنده ای تو باشه یک راضی که میگه چل مؤمن رو دعا کنید در خطوه در قنوت نماز بطرتون چیه بیاد چهل مؤمن بیافتید آد دیگران به اینجا رسیدن رضا شما سعی میکنید بهترین ها رو انتخاب کنید برای اینکه توی قنوت نماز و رفتنستون دعا کنید و این در ذهن شما ایجاد میکنه اونا به اینجا رسیدن من چی پس منم حرکت کنم برم جلو پس اگر کسی نافله رو نوافلش شب قبول کردی معلومه که نماز شب میخونی معلومه که روزشم میگیره این معلومه که بقیه رعایت ها هم داره یکی از بزرگان از مراجع خدایش رحمت کند یه روزی خدمتشون بودم موعظه میکرد طلبه های جوانترو میگفت شما وقتی دوران درس و بحثتون هست خیلی به مستحبات توجه نکنید که بتونید درستون رو خوب بخونید جلو برید به شکلی ایشون فرمودند که بنده در ذهنم اومد یعنی میخواد بگه تا نماز شبم نخونید پیشوناست که کردم حظ تایت الله ببخشید نظر شما اینه که نماز شبم نخونن گفت نه اینو کی جور میکنه بگه یعنی ایشونی که تاکید داشت درستون خوب بخونید وقت بگذارید باید جدی باشید بعد گفت مگه نماز شب رو این نسخه است تعبیر عنایت داشته باشید نسخه است که درمان بسیاری از دردها است که از هوای نفس برمی‌خیزه لذا میخوایم درمان کنیم هوای نفسمونو بیاین آقایون و خانومها این ماه رمضان که عملا دیگه سهر مجبوریم بیدار بشیم عادت بدیم خودمونو بعد از ماه رمضان این نیم ساعت قبل از اذان صبح رو بیدار بشیم حالا حدیث میگه چیزی بنده رو به من نزدیک نمیکنه. مثل نافله حتی اوحبه تا اینکه من او رو دوست میدارم خدا میگه من دوستش میدارم فإذا أحببته وقتی بنده من به جایی رسید که من دوستش داشتم فإذا اون موقعی که اون <تصفيق> حدیث مذلک چه بار دیگه میخونم اصول کافی <تصفيق> جلد دوم عربیش نه فارسی ترجمه نه صفحه 352 حدیث شماره 7 فإذا أحببته اینجا رو خوب دقت بکنید وقتی من یک بنده ای را دوست داشتم که سمعه الذی یسمع به و بصر الذی یبصر به و لسان الذی ينطق به و ید الذی یبشه به ها من گوشش میشم که با او بشنود. من چشمش میشم که با او ببینه من زبانش میشم که با او حرف بزنه من دستش میشم با او که دست دراز کنه و بگیره یعنی کی؟ خوب دقت تو اگر بنده چشمم ضعیف باشه مثال میزنم من در حد دنیای مادی و خودم میفهمم شما در سطح بالاتر مثال درست کنید بنده چشمم ضعیف نوشته ای روی این پرده هست نمیتونم بخونم آقا چشمشون قوی تره. میگم محبت اینو برای من بخونید ایشون شدن چشم من دارن برای من بنده گوشم سنگینه شما مطلب میفرمایید من نشنیدم آقا که گوششون از من قویتره میگم شما لط کنید برای من بشنوید به من منتقل کنید ایشون میشه گوش من من دستم رعشه داره لرزانه نمیتونه یه شی رو برداره شما توانمندید این کمک رو برام میکنید من میخوام حرف بزنم بلد نیستم شما کمکم میکنید حالا خدا چشم آدم بشه یعنی چی؟ خدا گوش آدم بشه خدا زبان آدم بشه یعنی بنده من به خودش خودشو به من نزدیک کرده که در اثر این نزدیک شدن من دوستش میدارم حالا که دوست میدارم من چشمش میشم یعنی باعث میشم یه چیزایی دیگر رو ببینه اون پیرمرد مرد کورش چی شد که چند روزه بعد این آقا مخواد برای کربلا این حالا دیده چون از کانال چشم خدا ببینید حدیثه پیغمبر میگه خدا فرموده فعضا احببتوهو دل رو ما داریم بحث میکنیم و این دل خب یعنی دلوستگی این دلوستگی یعنی چی حالا از اینجا بریم جلو و فعضا احببتوهو وقتی من دوست داشتم بندم را کنتسم اهل لذیه من میشم گوش او که به وسیله او بشنوه لذا شما یه چیزایی رو میشنوید که دیگری نمیشنوه سال 1353 یا چهار بود یکی از دوستان دانشگاهی ما نقل کرد اهل تبریز بود من تا اون سفرم تا اون سالم تبریز رو ندیده بودم نرفته بودم ایشون به بنده فرمود، استادی ما در یک روستای اطراف تبریز داریم مرد عجیبیست میارعرضه آدم از اینجا پاشه بره تا اونجا این مردمو ببینه. هوا یه سرد زمستان کنان رقبت در ما ایجاد شد گفتم فلانی بریم گاه این هست بذاری تابکو گفتم نه من می ببینه. رو ببینم. زمستان رفتیم بعد شامی می بود پاسی از شب گذشته بود رفتیم در خانهاش یه هوا سرد بود. زیر پرسی این پیرمرد نشسته بود. چهره نورانی چه مرد عجیبی توی هم بود مام زیر کرسی نشستیم فارسی هم خوب بلد نبود عربی و ترکی ترکی که زبانش بود عربی رو هم خوب بود قبی اهل بود گاهی عربی صحبت میکردیم گاهیشون ترکی میگفت اون دوست هم کلاسی ما برای ما ترجمه میکرد من از ایشون این رو پرسیدم شما چه کار کردید بی اینجا رسیدید خب یه استادی داشتم اون بی‌سواد محمود بی‌سواد گفت تو همین روستا درم چطور؟ گفت من طلبه بودم علاقه به زیاد داشتم درستم می‌خوندم. یه شبی شبها این اطراف روستای ما باغ انگور زیاده آب رو صحمیه بندی میکنم شبهایی که نوبت این پیر مرد بود میومد آب رو توی باغش راه کنه منم میامدم کنار دست این میشستم برای من حرف میزد یه شبی ایشون آب رو که توی این نمیدونم چیای باق باغ بین کرده بود نشست یه گوشه یه رو بکشه منم بقیل نشسته بودم یه دفعه گفت انا الله و انا الیه راجعون گفتم چی شد؟ گفتم چی شد؟ کریم ها عریف بود کرد گفتم کی میگه؟ گفت گوش کن مگه نمیشنوی من چی گوش کردم در من چیزی نمیشنوم ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم او محرم شده میشنید فردا صاد تلگراف رسید به تبریز تا کلیم کریمه حایرین فوت شد. چیزا ما از این مرد دیدیم. گفت من از این مرد پرسیدم که شما چیکار کردی به این کار رسیدی؟ گفت حرام خدا را حرام دانستن، حلال خدا را حلال دانستن. حرام و حلال خدا. حرام و حلال خدا. حرام و حلال خدا، حرام و حلال خدا. ای خدا، تو را به فرق شکافته علی به ما توفیق بده. بتونیم از حرام بپریم. بتونیم از گناه اجتناب کنیم به خدا برادر را عذر میخوام من اصلا خجالت میکشم و عذق کنم میام هم گاهی چارت کتابی که خوندیم با شما بحث کنیم من در سطح موعزه نیستم گاهی هم که هی به من تذکر میدیدین هر رو بزن زن میگم خودم و میخورم اما حالا درد دل, دل دوستانه بکنیم اروم میکنم به خدا قسم اگر آدم بتونه از گناه اجتناب کنه لذتی که از حیات میبره لذت که از زندگی میبره این اصلا قابل مقایسه با بقیه ای لذت ها نیست اصلا لذت گناه لذت نیست آدم وقتی به مثال بزنم بچه‌ی دبستانی از اینکه یک ستاره به پای دیکتهش بزنید و یه بهبه و چهچه سر صف دبستان بگید خوشش میاد یا نه لذت میبره یا نه که با این بهبه و چهچه و با این ستاره پای دیکته درس بخونه اما به سن منو شما رسید اون لذته یا لذت خود علمه ولی توجه نداری این لذت میدونه الان اگر به یک دانش ممتاز دوره دکترا بگیم آقا اگر خوب تد دکترا نوشتید یک ستاره پای این دیکتت میزنیم میگه منم از خره کردید آقا دیگه اینقدر که من بچه نیستم کسانی که تو مسیر بندگی خدای مقدار اومدن بالا واقعا از دروغ بدشون نیاد اونگونه که از زهره بدش میاد واقعا تون از رسی که غیبت بشه حالش منقلب میشه اونچنانی که شما با چاقو میخوای بزنی تو دلش چون با چاقو وقتی میزنی تو دلش چرا بدش میاد چون بدن داره اذیت میشه غیبت یه چاقوی داره به روحش میزنه روح وقتی زنده شد امشب میخواستم موعظه امیرالمومنین رو به امام مجتبی بخونم سریالا بررسن یه تیکشو میخونم حیف من پنج فراز از نهد الولاقه انتقاب کرده بودم یکی کشو میکنم بقیه انشالله پس ورد شب میکنم براتون که حضرت میگه چه کار کنید دلتون زنده رو آقا بدن مردر و هرچی چاقوزدی عمل نشون میده کرا است دیگه دل مردر و هرچی قیبت کردی این خیالش نیست اما دل زنده مثل بدن زنده بدن زنده رو آتش گذاشتی میگه وای میگه وای دل زنده وقتی غیبت پیشش کردی میگه وای زیزا نصف شب میاد با گردن کج میگه ای خدا چه بکن امروزم که صبح غروب شد بازم که دو تا دروخت و مسیرم قرار گرفت ای خدا امروزم که مجبور شدم دو تا نامحرم ببینم ای خدا امروزم که مجبور شدم دل دو نفر رو بشکنم خدا کی من باید بیام به سوی تو کی باید من آدم بشم کی باید من نجات پیدا کنم کی باید بر این نفسم غلبه کنم و وقت اونجا خدا خداش بلند میشه یعنی اگه بنده پیش پزشک رفتن الان پزشک من اونجا نشسته میگه خب چیته من دردمو بخوام شروع کنم به گفتن اگه خودمو دوست داشته باشم که مداوا بشن شروع میکنم به گفتن یا میگم حوصله ندارم دردم زیاده که مجبورم بگم پزشک اجازه بدید حوصله کن تا بگم هی میام جلوه این دردم دارم این دردم دارم این دردم دارم این راز و نیاز شبانه و این نوافل نیمه های شب با خدا خلوت کردنه که ای خدا من خیلی بیچاره خدا که زیبا گفته اون فرد هر کی هست این حرفش زیاده الهی چون در تو بنگرم خواجه ام تاج بر سر چون به خود بنگرم بندهم ام خواج بر سر بح. چون در تو بنگرم بله من تو خدا دارم پیش تو اومدم بلا تشوی. درست به درد دارم چه مطبی رو پیدا کردم چه پزشکی رو پیدا کردم دارم به خود میبالم من یک همچو پزشکی دارم اونم پزشکی که میگه صد بار اگر تو شکستی بازا بازم بیا ما راحت نمیکنیم ما دوست داریم ما منتظر بحانهی هستیم تا تو رو بپذیریم به حضرت موسا و فرستاد خدا موسا اگر تشبیه دیگه خدا که محل حوادث و تغییر جسمانی نیست حضرت موسا خدا و حضرت موسا میفرماید: موسی. اگر تو یک بیابان کبیری گم شدی آفتاب و گرما و تش بر تو غلبه کرد انقدر دنبال آب می که خطر حلاکت تشنگی برات هست یه دفعه به یک سایه ای و چشمه آب گوارایی میرسی. چه لذتی میبری؟ معلومه دیگه. اون وقت میگه خدا میگه یا موسا بنده گنهکار من وقتی گردنشو کج میکنه و اشک می من این برام لذت بخش هر کردم خدا برش لذت معنا نداره. میخواد ما بفهمیم یعنی چی؟ میخواد بگنی این جور خوشم میاد که بنده برگرده. اگر می گریزی زه بیگانه چرا از این آشنا می آدم با یه خدایی خوب خدایی داری خوب است مهربان عالی آدم اینو دست خب آقا آدم باید عاشق بشه دیگه تو محبت ورز میکنم مرحوم شیخ بهایی میگه سری که عشق ندارد کدوی بیبار است ها بله در این سراچه بازی که غیر مستی عشق. به هر که رو کنیم عاقبت پشیمانی اما عشق به چی؟ اگر بناس عاشق بشیم آدم خدا که داره عاشق چیز دیگه میشه اون وقت عاشق علی میشه چون علی مظهر خدا چون خدا گفته میخوای منو ببینی نگاه به علی بکن میخوای منو ببینی نگاه به زهرا بکن میرسیم ان بهش ما دردمون اینه که علی و زهرا و امام اص السلام رو از جوامع انسانی گرفتن کنار گذاشتن چه بکنه میره عاشق مدل اتومبیل میشه میره عاشق مدل فرش میشه میشه میره عاشق کلکسیون تمر میشه عاشق کلکسیون حلقه کلید میشه عاشق کلکسیون مدل گوناگون لباس میشه بالاخره دل دیگه خیلی. دل باید به چیزی بسته بشه اما اون دلی که به علی بسته شد یه نمیتونم دیگه به چیز دیگه دل ببندم شعر زیبایی رو پریشب توی جایی دیدم خیلی در این زمینه الان یادم اومد زیباست این دل ز علی اگر بگیرم چه کنم بیمهر علی اگر بمیرم چه کنم روزی که کسی را به کسی کاری نیست سردای قیامت دامان علی اگر نگیرم چه کنم این علی اگر بگیرم چه کنم بیمهر علی اگر بمیرم چه کنم روزی که کسی را به کسی کاری نیست دامان علی اگر نگیرم چه کنم خب آنی عجب تو لذا وقتی میخونه من اجابت میکنم اون هفته قلام عزت سجاد یادتون هست گفتم انزوری شد بنده شد دیگه میخوانه خدا اجابت میکنه و این سعالنی اعفیته وقتی از من مسئلت بکنه بهش اعتاق میکنم بهش میدم پس چه مقامی انسان میتونه پیدا کنه طبق آیه شش انشقاق فرمود این نکه کادحون الاربکه کت حنف ملاوی طبق این حدیث هفتم صفحه 300 سد پنجاب و دو اصول کافی جلد دو اصول کافی اگر بشر به عبادت خدا متمسک شد عبد شد عبد برای خربه به اونجا میرسه که چشمش چشم دیگری است گوشش گوش دیگری است دلش دل دیگری اون وقت وقتی حرکت میکنه تو جامعه نگاه میکنه به بعضی ها شما اگر دو تا هم کلاسی کلاس اول ابتدایی بودید با همدیگه اومدید دوره دکترای دانشگاه میبینید بغلدستیتون هنوز منتظره که یه ستاره به این درسش بدن قصده نمیخورید براش کجاست بیا بالا دیگه آقا اونایی که در مسیر تکامل پیش رفتن نگاه به من بدبخت میکنن میگن بسته دیگه حالا دیگه بسته به کنار بیا بنا بکن خب اینا همه مال چیه؟ مال نفسه در نفسم دیشب توضیح دادم مربوط به چیه؟ دل قلب که <تصفح> عقل و دل از اوسه. حالا دل باید زنده باشه که این هر پا مطرح بشه راه زنده کردن دل چیه؟ یکی که از وسیعت امیر المؤمنین علیه السلام در نامه سی و یک نحج البلاغه خونم <تصفح> بقیش انشالله فردا شب که یک کمی بحثمون فرق میکنه انشاءالله شبه های بعد ادامه میدیم نامه سی و یک نامه سرگشاده است به قول امروزی ها امیر از جنگ سفتین برگشتن این جنگی که خون به دل علی کرد هیچده ما جنگیدن هیده تن از یاران امیر که در جنگ بدر. از زمان پیغمبر باغی بودن از زمان پیغمبر تا زمان علی شهید شدن دی شوخی نیست این جنگ یکی <تصح> از این شهدا جناب امار یاسره خیلی امیر المؤمنین در جنگ سفین عذیت شدن از همین نامشکل تر جهالت مردم که جریان حکمیت پیش آمد و ابو موسی عشقری رو انتخاب کردن و بعدم جنگ اون غذای که دیگه میدونید حضرت نشون میده خیلی دلشون درد داره. خیلی دلشون این نامه رو به امام مجتبا نوشتن امام مجتبا که مقصومه حضرت میخواد از این کانال این نامه یک سرگشاده بمونه امشب هم من و شما روشکار بکنیم خیلی مفصله یکی کش اینه فعنی اوسی که به تقوی الله ای بنعی و لزوم امره بابا جون پسرم تو رو وسیعت میکنم به تقوی خدا و لزوم امره ملازم امر پروردگار باش. و امارت قلب که به ذکره و قلب که به ذکره ما قلب حالا خونه بیام تو این عالم ماده بگیم معمور در مقابل چیه؟ مخروبه میگیم این خونه آباده یا خرابه است معموره یا ویرانه است قلبم یه وقت قلب ویرانه است قلب مرده است یه وقت قلب آبادی است و امارت قلب که مأمور بدار قلب تو. حابر جا و سالم نگهدار، به ذکر با یاد خدا. علاوه بر ذکر الله، تسمه اینالغلوب. ولی اتصال به حبله. اینجا رو اجازه بدید چون بعدیه داره من کاری نکنم. این یه نکته رو میخوام بگم. احی قلب دل تو زندگان، بل موعظه و موعظه. متاسفانه متاسفانه متاسفانه گاهی ما برخورد میکنیم به دوستان خودمون آقا چهار تا حدیث یاد گرفته دو تا آیه حفظ کرده حالا میگه کائنات هم باید بیاد از بنده درس بگیرد من تو مجالس وعد شرکت کنم همین آقا دو بددختی است برادران و خاهران مجالس امام حسین و مهم بشمرید. به امام صادق علیه السلام عرض کردن یبنه رسول الله این که حدیث میگه انل حسین مصباح الهدا و سفینه تون نجا مگر شما ها مصباح دایت و سفینه نجات نیستی فرمودن هممون مصباح دایتی هممون سفینه نجاتی ولیکن سفینه جدام حسین اسرع سریتره زودتر میرسونه <تصفح> یک رازش <تصفح> اینه که با امام حسین باعث شد مجالس وعظه زیاد برپا بشه می دشمنان ما چه رنجی میبرن از این مجالسی که به نام ما حسین در طول سال برپاس شبای جمعه آشورا نمیدونم ماه سفر ماه رمزان دهه فاطمیه دهه کازمیه و هر چه تبلیغات کردن و پول خرچ کردن با روشن فکر معاوی های گوناگون اینا رو از ما بگیرن دیدن آقا نمیشه نمی کنن از به این ببرن آخری میان همین که پریشاب هم شنیدید الان چند سال سپاه صحابه در پاکستان آقا یه ما شیعه گناهشون چیه دارن نماز جماعت میکنن گناهشون اینه که میگن علی گناهشون اینه که میگن زهرا آقا ما علی و زهرا رو شناختیم نمیتونیم زیر با ربوبک بریم نمیتونیم عمر رو قبول کنیم تو یه بد وقت علی رو نشناختی که هنوز داری میگیر عمر خلیفه پیغمبره ولی منی که وقتی به اندازه فهم ناقص خودم فهمیدم علی کیست تو میتونی عمر رو به من بار کنی روشونم بینشونی و نمیرم زیر بارش نمیری مسلسل میبندم و خیال کدیبایی مسلسل بستنها میتونی بگیری او افتخار میکنه که علی چون منم خونم و برای تو در راه نماز دادم همونطوری که جرم زهرا چی بود دختر پیغمبر رو کشتن چون نگفت علی مام هم زهرا میشه مسئله اینیست لذا مجالست عبی عبدالله آقا بچه هاتون تو مجالست ببرید خانواده هاتون تو مجالست ببرید بنشینید تو مجالس وعظ بشنوید وعظ کنید وعظ داشته باشید خودتون تو خانواده آقا سر سفره ها دور هم دیگه میشینی ای سر افطار این سهر در طول سال این عادت رو داشته باشید به خدا ما از این روشنفکر معاویه ها خیلی زرر کردیم این فرهنگ اصیل دینی ما رو دشمن میخواد از ما بگیره لذا میبینید قبول کنید یه مقداری معنویت تو ما مرده قبول دارید یا ندارید من به سهم خودم دارم میگم 20 چند سال تو این تهران دارم کلاس میرم و درس میگم بی‌تعارف بگم کسانی را که 25 سال قبل 24 سال قبل 20 سال قبل 15 سال قبل همین حرفایی رو که میزدیم اشک چشمشون بیشتر جاری میشد و کسانی که 5 سال قبل حالا میزنیم اشک چشمشون جاری بشه مقایسه میکنیم خودم خودمو مقایسه میکنم خیلی بدتر شده افت کردیم یک دلیلش همی حرفاست آقا ما باید مجالس امام حسین و محترم بشمریم من نمیگم بحث علمی نداشته باشید تحلیل نداشته باشید محتوای جلسات رو بالا نبرید ببرید قوی ولی روشم فکر زده نشید آقا افتار پن کردید بچه یه خرما بخورید یه استکان شیر خوردید یا یه دیگه سب, سب کنید ما یه علی داشتیم خودی نیست ما یه علی داشتیم میدونی چی میگفت؟ این علی وقتی غروبا که شبات میشد نون و خرما برمیداشت و خرابه ها حرکت می کرد. به این میرسید به می بچه ها ما یه زهرا داشتیم. هیچ ده ساله از دنیا رفت. چرا؟ چرا هیچ ده ساله رفت؟ میدونی چرا؟ برای اینکه میخواست از حق دفاع کنه. ما یه امام حسین داشتیم. اینجوری شد. ما یه علی اصغر داشتیم. اینجوری شد. آها اینا رو زنده کنیم تو خانواده امام. سهر که میشه یعنی شما خودتون اگر مثل امشبی مثل فرداشبی سر افطار نشستید یعنی آدم دلشواد بسوزه تا به دیگران یه وقتی گوشه نشستید صدای گریتون بلند شد اگه نیستید اینجوری برید در خودتون زحمت بکشین حالت ایجاد کنید یه وقت ممکنه دختر 5 سالتون پسر دوازده سالتون میاد رد بشه بابا چی شده بیادم از علی افتادم نمیتونم خودم رو کنترل کنم گریم گرفت اینا روح میده به بچه ها اینا صفا میده اینا رو بیانی تو جلسات تو جلساتی کار رو بکنید گفتو حرم از طب الفض علیه السلام بودم از یه مال خیلی قبله یه مادری رو دیدم بچهش تو بغلشه که این لغمه نون گرفته بچه گرست نشه گاهی بده بچه و خوره که بتونه دعا بکنه یکی دو بار دیدم این لغمه نون رو میاره به این خاکای سنگای حرم از می می بچه. من رفتم جلو گفتم مادر این بهداشتینی خیلی با پای برهنه میان میرن گفت اینجا حسابش جداست ما میخوایم این روح اول فضلی رو این شهامت رو اون وقت دلا چه کار کرده خودم چند ماه قبل تو هرم از اول دیدم به شما گفتم نماز صبح بود دو تا سه تا سنی رو دیدم چون بی نماز میخوندن و دست بسته دو تا جوون بودن یکی ما ظاهرا دو تا پسرهای پدر بودن جوون هم بودن. دیدم که یکیش مهر گذاشت ولی دست بسته معلوم شد اینجا احترام اول فد و کرده مهر گذاشته اون دوتا بی مهر ولی دست بسته نماز که تموم شد این یکی حالا من دعام و زیارتمو همه رو گذاشتم کنار تو نخ رفتم دیدم اینا چیکار میکنن تو برم از هست دیدم مهر رو بوسید گذاشت کنار یه ایرانی نقل پخش میکرد یکی از اینا دوید اومد دو سه تا نقل بگیره تیپم پی نبود که بگم محتاج دو تا نقله من دقیق دقت کردندم دو ستا نقل گرفت بوسید گذاشت تو جیبش یعنی نقلی که تو حرام از قبل فضل پخش میشه این که این شفاست یک آقای چند روز قبل برای من توضیح داد این رو گفت قاری قرآنه گفت ما رو برده بودن یه جایی برای غراعت قرآن ورزشکارا بودن و بنا بود بعدش هم ها وزنه بردارن او اسم رد من دیگه اینا رو دقت نمیکنم یادم رفت گفت فلان وزنه بر که رکورد رو در ایران فلان سال شکست این مسیحی بود گفت همه وزنه بردارا اومدن نوبت این رسید این اومد وزنه رو برداشت خواست بلند کنه گفت یا ابلفس گفت بعد از اینکه وزنه رو بلند کرد ریختن جلوش گفت چی گفت ما میدونیم ابلفس چاقایی لذا ما هم هر جا گیر می کنیم اول فضل رو صدا می کنیم ای اول فضله ای امام حسین ای امیر المؤمنین ای فاطمه زهرا این امام حس علیه السلام اینا تو مجالسشون بشنید بحث کنید یه مقدار از وقتمونو انقدر دنیا زده انقدر کار انقدر زندگی انقدر مشقله انقدر پول انقدر عنوان بسه دیگه آخری یه مقداری هم انسان لاقل هفته ای دوتا دو ساعت دو تا سه ساعت دو تا چهار ساعت دو تا نصف روز بذارین تو خانواده من جلسه دوره هم احی قلب کبل موعزه پسرم دلت رو با موعزه زنده کن دل احتیاج داره موعزه بشنره این وضع دل انسان رو تکان بده وقتی تکان خورد لذات تو ما مردم کوفه رو من این بحثم بحثان جزه رو کافی باشه این مقدارم واقعا انعایت خودشون بوده سن فکر نمی بتونم حرف بزنم حالا اونهایی که دلشون زنده بود به اندازه ای که امکانش بود تو همین کوفه از علی چه گرفتن که الان شما از قبرشون میگیرید حدیثی دیدم که امام صادق فرمودن کسی که با حب خب به ما خانواده از دنیا بره بمیره خدا فرشتگان رو معمور میکنه دور قبرشون باشن تا روز قیامت فرشتها دور قبرشون تواف میکنن حالا قبر مثلا کمیل حرم کمیل تو کوفه حرم میسم تمار تو کوفه اینا زنده دل بودن از علی گرفتن دیگه اونهایی هم که دلشون زنده نبود علی چقدر تو این کوفه خطبه بخون چقدر منبر را چقدر داده؟ دیگه از امروز صبح علی ساکت شد. برای عموم ساکت شد ولی برای خصوصی ها هنوز نه. امروز دیگه سر صدا پیچید تو شهر کوفه که علی تو خونه خوابیده. راستن پزشک آوردن علی که خودش طبیب همه است میخواد راه رو نشون بده که اگر مشکلی داشتید به اهلش باید مراجعه کنید آه طبیب بیشت بیش بیش. طبیب آورده طبیب گفت این شمشیری را که به فرق آقا زدن شمشیر زهراغین بوده بدن مسمومه شیر برای آقا خوبه یه وقت صدا پیچید که برای علی شیر خوبه بچه یتیمای کوفه علامان و نمیدونم حالا من اینجا زوغی برخورد میکنم اینه که ننوشتن جایی حالا ظاهر شد هم باشه یه وقتی دیدن ولوله افتاده هر بچه یه کاسه به دست گرفته میگرده که شیر تهیه کنه جام شیر به دست پشت در خانه علی جمع شده اون میگه کاسه شیر منو و آقا بدید اون میگه کاسه شیر منو و آقا بدید اما اینجا مهمه وقتی کاسه شیر رو به دست دادن، آقا فرمودن. حسن جان ابن ملجم در چه حاله یا علی تو که به ابن ملجمم توجه داشتی شما رو به حق همسرتون زهرا در این شبه نگاهیم به ما بیاندازی